دیدار شد موی از سر و بوس و کنار هم از بخت شکر دارم و از روزگار هم زاهد برو که تاله اگر تاله من است جامم به دست باشد و ظلف نگار هم ما ای به کسب مستی و رندی نمی کنیم لعلبتان خوشست و می خوشگوار هم ای دل بشارتی دهمت محتسب نماند و از می جهان پرست و بطه می گسار خاطر به دست تفرق دادن نزیرکیست مجموعی به خواه و سراخی بیار هم خاکیان عشق فشان جرعی لبش تا خاک لعل گون شبد و مش بار هم آن شد که چشم بد نگران بودی از کمین، خسم از میان برفت و سرشک از کنار هم. چون کائنات جمله به بوی تو زنده زندهاند، ای آفت سایز ما برمدار هم. چون آب روی لاله و گل فیض حسن توست، ای ابر لط بر من خاکی ببار هم. چون آب روی لاله و گل فیض حسن توست ای عبر بر من خاکی ببار هم حافظ اسیر زلف تو شد از خدا بترس و از انتصاف عاصف جم اقتدار هم برهان ملک و دین که ز دست وزارتش ایام کان یمین شد و دریا یسار هم بر یاد رعی انور او آسمان به صوب جان می کند فدا و کواک ابن هم گوی زمین رو بوده چوگان عدل اوست وین برکشید گنبد نیلی هسار هم عزم سبک اینان تو در جنب شاورد این پایدار مرکز آلیمدار هم تا از نتیجه فلک و طور دور اوست تبدیل ماه و سال و خزان و بحار هم خالی مباد کاخ جلالش ز سربران و ساقیان سر قد گل ازار هم.